بخش ششم صالح روهامی با خط کج و معوجی روی یک ورقه معمولی نوشته بودند کلاس داستان نویسی خانم دکتر محمدجانی رأس ساعت چهار در اتاق شورای گروه ادبیات فارسی تشکیل شود یعنی ممکن است این دکتر محمدجانی همان دکتر محمدجانی استاد درس فلسفه هنر باشد یعنی آن زن عبوس، خشن و مرد میتواند داستان نویسی درست بدهد؟ این زن موجود شگفتی است. با همه زن‌هایی زنهایی که تا کنون دیدم فرق میکند. درست است در زندگی من زنهای زیادی وجود نداشته و ندارند. ولی هیچ شباهتی بین او و مادرم یا امه مرزیم یا زن امورزا نمی خطوط چهرش آدم را به یاد ماجسمه های سنگی میاندازد. لبهای به هم فشردش خشمی را مهار می کند که گویی هر ثانیه آماده انفجار است. نگاهش گاه بی تفاوت، گاه تنظامیز و گاهی تنفرآمیز می شود. می قسم بخورم هرگز مردی را نبوسیده و کودکی را نوازش نکرده است. اما رفتارش با دانشجویان متفاوت است و همین تفاوت است که او را برای من جذاب و حتی دوست داشتنی اگرچه دانش و اطلاعات وسیعش آدم را شگفت زده می کند. اما شخصیتش برای من جذاب است آن روز وقتی می خواست خودش را معرفی کند و بگوید چرا فلسفه خوانده است در چشمهای من خیره شد و گفت من محمد جانی هستم و به همان دلایلی فلسفه خواندم که روحامی جوان می بخواند بعد پشت میزش نشست و گفت مرگ کلمه مرگ تنین وحشتناکی در آن کلاس بسیار بزرگ ایجاد کرد. سکوت او بعد از گفتن کلمه مرگ حضور سنگین مرگ را در فضای آن کلاس ساکت صد چندان کرد و من احساس کردم زیر فشار بالهای سنگین مرگ که بر آن کلاس خیمه زده بود دارم خفه می شدم. بعدی او رهایی بخش بود. گویی با هر جمله او مرگ بال و پرش را از کلاس جمع می کرد. وقتی صحبتهای او تمام شد، مرگ از در بیرون رفته بود. اولین بار بود به طبقه چار میرفتم. فضای این طبقه با دیگر طبقات فرق می کند. اینجا کشور گل و بلبل است. گلدانهای شاداب اینجا و آنجا خود نمایی اگرچه بلبلی بر شاخسار ندیدم. ولی دخترهای دانشجو سبکبال این طرف و آن طرف میچرخیدند. احساس کردم در اینجا هوا سبکتر است و آدمها راحتتر راه می‌روند و نفس می‌کشند. اتاق شورا به دفتر گروه چسبیده بود. میز بزرگی و سط اتاق بود و دور تا دور آن صندلی چیده شده بود. وقتی وارد شدم هنوز استاد نیامده بود. این را از وضعیت به هم ریخته کلاس فهمیدم. دختری روی میز نشسته بود و با حرارت با پسر جوانی که موهایش را دوم اسبی بسته بود، حرف میزد. پسر پیپ می کشید و بوی شکلات اتاق را پر کرده بود. روی یکی از سندلی ها نشستم. دختر بغل سرش را برایم تکان داد. هر کس از در وارد می شد سر و صدا با همه خوشوبش می کرد. معلوم بود همه همدیگر را میشناسند. پسر جوانی که روبروی نشسته بود مطالعه می کرد. فکر کردم چطور می تواند در این آشفت بازار کتاب بخواند؟ تقریبا یقین کرده بودم که این دکتر محمدجانی آن محمدجانی منظم و دقیق نیست. هنوز اصول نهگانش را به خوبی به یاد داشتم. بی خود آمده بودم. باید زودتر میرفتم. پدر منتظرم بود. بلند شدم، اما هنوز صندلی‌ام را جابجا نکرده بودم که دکتر محمدجانی با صورتی بشاش وارد کلاس شد. باور کردنی نبود. تمام خطوط چهرهش می خندید. دختری که روی میز نشسته بود پرید پایین خانم محمد جانی گفت سلام بچه ها به اولین کسی که دست داد همان دختری بود که روی میز نشسته بود گفت چطوری نتشا؟ نتشا گفت توپ، توپه توپ دکتر محمد جانی گفت پیر چطوره؟ نتشا گفت شکمش پی وارده همه خندیدند. به دختر بعدی که دسته‌ای ریزه میزه داشت گفت: نزنین؟ نازنین، تابستون خوب بود؟ کازت گفت: همش سگ دو زدم. عشق و بیچاره میکنه. باز هم همه خندیدند. فهمیده بودم که اینجا همه به نامی نامیده میشوند که احتمالا قهرمان یک داستان است. لا سریال بینوایان را دوبار از تلویزیون دیده بودم. خانم دکتر محمد جانی به من که رسید سکوت کرد احساس کردم تغییری در چهرش ایجاد شد گفتم سلام گفت پس شما هم اهل داستان و نوشتن هستین گفتم نوشتن که چه ارز کنم بیشتر از سر کنجکاوی اومدم گفت خب خوش اومدید ایشون آقای روحامی هستن دانشجوی ترم اول فلسفه وقتی اولین بار دیدمشون به یاد هنر ای افتادم که نقش فرانچسکوی قدیس رو بازی میکرد. نمیدونم شما هم با نظر من موافق هستید یا نه؟ و خندید. همه ی دانشویان همراه با هم گفتند خوش اومدی فرانچسکو. احساس سباکی کردم. فیلم را ندیده بودم. ولی کتاب به اسم رفیق اعلی خوانده بودم که به نوعی سرگزشت فرانچسکوی قدیس بود. از این انتخاب خوشم آمد. بی اختیار لب‌هایم به خنده باز شد. همه نشستند. یکی از پسرها سرش را نزدیک خانم دکتر محمدجانی برد و آهسته به او چیزی گفت. همه با هم گفتند: هو هو. پسر جوان که او را راسکولنیکوف می‌نامیدند گفت: "مرز." خانم دکتر رو به پسری که موهاش را دم اسبی بسته بود کرد و گفت: دستخالی اومدی، شازده؟ کوزت گفت، شازده خصیصن. دختری که اما بواری نامیده میشد و زندگی با شارل را کسل کننده میدانست گفت، اون هم از نوع احتجابش. شازده با شرمی آشکار کیفش را باز کرد. چند جلد کتاب لاغر از آن بیرون آورد. همه سکوت کرده بودند. صفحه اول کتاب اول را باز کرد. نگاهی به آن انداخت و آن را به طرف اما گرفت اما گفت به لخره مرتکب شدی شازده گفت سیاه مشقه دومین کتاب را به طرف پسر جوانی که هیسکلیف نامیده میشد گرفت هیسکلیف گفت بیچاره شدی نویسندگی هم شد کار شازده به همه اعضای کلاس کتاب کمحجمش را داد ولی هنوز چند جلدی جلو رویش بود صفحه اول کتاب را باز کرد و در آن چیزی نوشت و بعد آن را به طرف من گرفت. کتاب را گرفتم. مرد و جاده. روی جلد کتاب خبری از مرد و جاده نبود. به جای آن تصویر مبهم آهویی را دیدم که رو به یک جنگل مبهم میدوید. صفحه اول را باز کردم. نوشته بود: برای فرانچسکوی عزیز. کتاب را ورق زدم. بر پیشانی صفحه بعد نوشته شده بود: این وجیزه حاصل همسفری با استادم خانوم دکتر محمدجانی است آن را تقدیم می کنم به او و همه همسفرانم پس او مریدان و دوستانی هم داشت پس این کلاس با کلاس های فلسفی خانوم دکتر فرق دارد کوزت ریزه میزه تنها کسی بود که در آن جلسه داستان کوتاهی خواند بعد از خواندن داستان یک از اعضا اظهار نظری کرد و در نهایت خانم محمدجانی مثل یک مکانیک داستان را پیاده و دوباره سرهم کرد کزت خانوم تمامی حرفهای خانوم محمدجانی را یادداشت کرد در پایان کلاس خانم محمدجانی داستان ها و نوشته های بقیه را جمع کرد و بین اعضا تقسیم کرد به من چیزی نرسید